بخترها پسرهای شاری دوباره سلام شنبه 9 بهمن 95 من امیرم و صدای راژیو شار رو از مرکز تهران در آخرین روز روی داتای هنرهای تجربی ست میشنوید پشت میز راژیویمون هستیم تو لاوی تماشاخانه تهران و بهنود صدا بردار و سروش مجری مهمان با دو آرتستی که امشب اینجا اجرای خیلی خوبی رو ازشون دیدیم می می‌کنیم با حسام اوحدی ایدلفون و شاهین صبا یا دیپول اما قبلش یه جمع بندی کلی از ویژگی‌های ست امسال بهتون بدم در مقایسه با ست پارسال خب اگه یادتون باشه با پارسال تو برنامه ایران کرنت 1 یه برنامه هفتاد دقیقه‌ای مفصلاً راجبه به ست 94 صحبت کردیم خب بیشتر آرتिस्ट‌های ست هم قبلاً تو رادیو شار مهمونشون بودیم یا آلبومشون رو ریویو کردیم یا گستینگ سو اینا برای اینکه می‌خوام جالب باشه برای شرمند که نظر من عجببه سه اثال رو هم بششنود ست ااممسال از جهات زیادی بهتر و پیشرفته تر بود جمعه های هم داشت که نسبت به پارسال فرقی چندانی نکردم اول از نقاط مثبتش بگم مهمترینش محتوای کار بچه هاست که به نظر من قش یا روبه جلوتر بود یا همون صدایی که شنیده بودیم پخته تر شده بودم مثلا آراشکبری ف میکن قشن محصل تلاش هنریش رو به نمایش گذاشت با ویژاله خیلی خوبی که کار خودش بود امروزم اجرای حساب خیلی به نظرم جدید ترز اجزاش تو پارسال اومد. سوتس یا اثر ابتکار هم ترکون به اصطلاح جاهونا و بازم شنمندا رو با بی‌رحمی وارد دنیای صوتی خودش کرد. یه شاهین و بهرنگ هم تو تمپلوژن امثال به مراتب از پارسال جلوتر بودن و از خیلی هم شینم که یکی از بهترین جاهای مدل تو زهرون بود. دیگه اینکه به چشم دیدم که استقبال خیلی خوبی از ستمسال شد. سالون بیشتر از صد نفر اینجا هر شب پر بود و هر چی هم به روزای آخر فستیوال نزدیک‌تر می‌شدیم شلوغ‌تر هم می‌شد. خب نظم و هماهنگی اجرا و ولیو همه چیزای ستادی اجرای ست واقعا از حق نگذریم تا اندازه زیادی قابل قبول بود. یواش یواش بریم سراغ چیزایی که میتونست تغییر بهتری هم داشته باشه تو ست امسال. بلیت امسال 40 تا 50 هزار تومان بود برای هر روز که دو اجرا رو شما میدیدید. ست یکم 40 هزار تومان بود. خب این یه بحث پیچیده ایه که قصد دارم با آرمین تو برنامه بعده ایران کرید مفصل راجع به صحبت کنیم. یعنی بحث لایوا و اصلا این مدلی که در واقع این چند سال تو تهران مود شده. آخه می‌دونید من از دوربریان خیلی می‌شمم که محتوای کار بچای ست رو دوست دارم و خب اون ارزش گذاری مادی به اون شکل نداره. ولی معتقد من این قیمتی که بچای ست می‌ذارن و بیلیژشون با مدل و اون فرم اجراشون تناسب خوبی نداره. داریم در مورد تجربه صحبت می‌کنیم که قرار بابتش پول پرداخت بشه دیگه. یعنی که با 40000 تومان چه کار دیگه ای می میشه کرد؟ مثلا تو شره اقتصادی اعلی. چه اینم که یکی از مخاطبا میگفت این قیمتی ممکنه برای تاعت توی تهران الان منطقی باشه ولی وقتی که ما اساسا یه موزیک کامپیوتر بیس میشنبیم به وقتی سازی نمیبینیم و قرار تجربه و اصلا توی بلک باکس تاریک باشه و همه بشینن و مثلا موبایل هاشونو خاموش کنن و اینا با اون پوله مثلا شاید کار بهتری هم بش انجام بود اَبْتَ نظر من رو اگه بخواد البته خیلی واقعبینانه نیست و اصلا ممکنه ممکن نباشه ولی من بودم 50000 تومن بلیت میذاشتم برای یک روز فستیوال که مثلا همه این هشت آرتيستا رو اجراشون رو ببینیم مثلا از ظهر و یه طوری که استیج‌های مختلف داشت و آدمو می‌تونستن همزمان بین اجراها رفت و آمد کنم حالا با توجه به کوچیکیه ونیو این می‌تونست مثلا تو دو روز تکرار بشه قسمت‌های قبلی از بچه های سه سچنید که اونا قبلش فراخوان داده بودن که اگه بچه‌ای می‌خوام بیان اینجا اجرا بذارن ولی گفتن که از توشون فقط یک نفر اضافه شده بود نسبت به پارسال چون که با سریقه فقط اون یک نفر جور بود یا بچه نفر رسادن یا کار واقعا اونطوری نبود پس یه فرق جالب سه‌ت امسال حضور یک اسم جدید تو لایناپ ایونتاشون بود به اسم ترخون با اشکان یا همون ترخون که قسمت اول صحبت کردیم و از اجراشون هم تعریف کردیم خیلی هم. اما منصفانه بخوام بگم در مقایسه با کارهای دیگه‌ای که بچا تو این سبک میشنیم ازشون خیلی ویجگ منحصربفردی نداشت یعنی خب میتونم تصور کنم به جای ترخون مثلا ایکسوی زدم میتونستم باشم البته شاید نشه این نکتر مستقیمن نقطه زف 3 چرا که برحال همطور که از خودشون شنیدید اونا یه جریانی که دادارن سلیقه خاص خودشون داره و حقشون اونطوری که دوست دارن لایناپشون رو گفتم این بحث لایف ها و لایف گذاری رو کلن و مفصلا تو ایران کرنت بعدی با آرمین دنبال میکنیم. اما خب همینجا بگم که بچه های آرتیست همگی بهتره بدونن الان تولید محتوا شاید از پریزنس کردنش به این خیلی مهمتر باشه. یعنیnabla table live زندگی باعث بشه همه در بنوهر هم گار بگیرن و مثلا فکر کنن کسی جای کسی لیبرو تانک کرده اینو الانم که خوشبختانه داره لایوا و وندوی مختلف بیشتر میشه تو تهران بنابراین میتونم اینطوری جمع کنم که ست امسال نسبت به سال 94 از لحاظ برگزاری بهتر بود محتواش هم غنی تر بود و تنوش آره یکم بیشتر بود این رویداد 4 روزه به نظرم واقعیت حال حاضر اجرای موسیقی الکترونیک تو تهران بود یعنی یه دماسنج مناسبی برای اینکه ارزیابی کنیم این مدل اجرا چطوریه یعنی انی که تو گالری‌ها و سالن‌های تاس تو چند سال اخیر دارن بیشتر و بیشتر میشن اجرایی که کامپیوتر و متعلقات و ویژوال ركن اصلی رو توشون بازی میکنن پس اگر بخویم کلا نقاط ضعف ست رو در نظر بگیریم به نظر من تو خود ست و توی محتوای موزیکشون اصلا نیست اونا خیلی هم دارن خفن کار میکنن واقعا بچهای ست نکات زیادی برای تحسین دارن اما از اونجایی که واقعا احتمالا الگو بخش خیلی‌ها هستند بید آرزو کنیم منشه این الهام مخشی براشون بیشتر اون کار گروهی و جدیت و اون استقلال فکری بچه های ست باشه تا این همون راه هایی که اونا میرن چون به همین دلیل ساده که خب اوه اله ماشاءالله راه های بسیار است خب جمعنیمونه کم طولانی شد بریم سراغ گفتگون با حسام اوهدی و بعدش هم شاهین سبا در آخرین روز رویدادهای های هنرهای تجربی ست صومه واحدی که اسمش ناشناخته نیست من میگم برای بچه‌ای که آیدی امو الکترونیکو امبیئنت دوست داشته باشن و توی تهران زندگی کنن و پیگیر باشن که حتما میشننت ولی این ست امسال که به این حد از رضاتمندی رسید که واقعا یه موفقیت نسبی خیلی خوبی داشت شاید برگردین اون هسته اصلی همون دوستی شما و سیاوش و نیما و امیر و این اجری که امشب ازتون با پارسال فرق زیاد دیدم ولی می‌خواستم از زبان خود که به این حساب واحدی بهمن 95 با خورداد 94 چقدر فرق؟ خب آدم تغییر میکنه منم مثلا اجرایی که پارسال داشتم در واقع ایپیم بود که مثلا یه ماه قبلش بسته شده بود اجرای امشب هم, هم یه الپیه که اونم هم دقیقا از بین اون ایپیه که بین خورداد داشتیم تا همین روزها بسته شده و برای همین این تغییره در واقع تغییر آیدلفونه چیزی که شنیدین توی موزیک و آه حالا آره دیگه ما تغییر کرده هم دقیقا تا حدی فکر میکنم یه جاهایی هم هنوز هستم سر حرفم مثل قبل و همین بود از ابتکاری که چند روز پیش صحبت کردیم یعنی دو هفته پیش چیزی تعریف کرد از اینکه اخیراً رفت بود بوایلر روم و اونجا شینده بود که کار بچه یعنی ستو پرزنت کرده بود و شینده بود که اون لهجه تهران خیلی مشخصه توی صدای کار بچه که الکترونیک می‌سازن اینو در کنار این بذاریم که حدس من اینکه موزیک حساب اومه حالا نمی‌دونم شاید از تایتل آلبومش بود که اینتنسیو کالکتیویتی نون از سیتی مثلا اگه ترجمهش کنیم یه مودیه متراکمی که حالا اسم شهرروش می‌ذاریم چجوریه یعنی تهران کلا توی الکترونیک چطوری به تصویر کشیدیم من خودم به شخصه این دوتا دو تا واسم چیزه این من همون قدری که تحت تاثیر تیم کردم، تحت تاثیر آدمایی که هر روز می‌بیننمشون هستم و تحت تاثیر سوپری محل و دکه‌ای که سیگار می‌گیرم ازشون اینا همه واقعاً جدی همون رو من تاثیر می‌ذاره برای همین ناخودآگاه تاثیر شعر روی من خب و در اینها دوستای دوستان و دوستای خوبی که دارم و همیشه میبینمشون و اینا اینا واقعا رو من ته حالت تو, تو مثلا اول کار رفرنس بدی مثلا به دوستی من و سیاوش که خب آره خب مثلا من و سیاوش واقعا برمیگرده مثلا به استموران و دبیرسون و بند متال و بعدش هم تغییر علاقه‌مون حالا سیاوش زودتر یه, یه سالی بعدش من به حالا به سیستم الکترونیک و اینا موزیک دیجیتال و آره حالا مثلا اون موقع تحت تاثیر من به شخصه تحت تاثیر حالا استودیو منی بود به نام جواد سفری تو کرگرده سوی کارگردان و حالا خلاصه این اتفاقی که حالا مثلا بین من و سیاوش و بعدش هم نیمار رو من شناختم سیاوش رو دونشگاه دوست شده بود به هاشون اینا من شک ندارم که این کمک کرده ریزونانسی که مثلا بین مثلا علاقه ما و اشتیاقمون به یه چیز مشترک مثلا بوده حالا هرکیت سیستم خودش مطمئنن اگه تنهایی بودیم هم میتونست اصلا تموم شه هم میتونست خیلی خیلی سختر باشه ولی خب ریزولانسی که ما داشتیم و بعدش حالا مثلا توی فوتومت خودشون نشون دادم یه تجربه و بعدش هم حالا خودمون تو پروژه سولومون داریم پی میگیریم شاید خب مثلا من فکر می‌کنم که حداقل برای خود من خیلی کمک بود یعنی مثلا من خودم موزیک ساختن هرچی یاد گرفتم شاید مثلا بتونم بگم از سیاوش به طور خاص یاد گرفتم مثلا سیاوش خب مثلا آدم بوده که از اول الان شاید مثلا حتی مثلا ردپای ملودی‌ها و هارمونی‌های سیاوش اگه بتونم مثلا شاید تو موزیکم پیدا بشه بعضی موقع خب چون همیشه بغل گوش من داشته مثلا گیتار می‌زاده و دیگه تو مخمه دیگه هرچی زده و اینا و این برای من به شخصه هست جلوتر که میایم این دوستی رزونانس امیربهادر جون میشه آرش جوین میشه یعنی جوی میشه که اینا همه آدم بودن که خودشون واسه خودشون بودن و فقط رسیدیم به همدیگه در نهایت و این منفه میکنم رزونانسه هی داره بولتر و بولتر میشه یعنی حالا من خودم به شخص میبینم به عنوان مثلا منی که اول با سیاوش بودم بعد به ترتیب میتونم بگم آدمایی که دونه دونه به دایره دوستان و دایره کسایی که مثلا یه علاقه مشترکی با هم تقسیم می‌کردیم اضافه شدن و خودم هی از اونا انرژی گرفتم و هی رزونانس اونا منو بیشتر هیجان زده کرده نسبت به قضیه و ست واقعاً خوب نتیجه مثلا من فکر می‌کنم مستقیم اینه یعنی ست نتیجه‌ی مستقیم این ارتباط هست و این حالا دوستیه که تصمیم گرفتن که آقا مثلا بریم خب اینو تر کنیم، تر کنیم و مثلا بتونیم مثلا طرفدار خودمون رو بتونیم با اجرای زنده راضی کنیم و برای همین این سیر کاملا بوده فقط فکر کنم حالا اونورم الان به سینا داشتم میگفتم، فکر کنم که همینطور که این باید باشه مهم اینه که مثلا بیه بستری مثل ست بتونه این ایده رو بده و آدم دیگر رو هیجان زده کنه یعنی اینکه که تا ابد اگر بخوان مثلا ده نفر 20 نفر سی نفر ولی هی همونا قراره هی یک کاری بکنن این اصلا سین به نظر من محسوب نمیشه و مثلا یک اتفاق دور است یه, مثلاً یه اتفاق توی دوره ای بوده که تموم میشه میده ولی سین چیزیه که اینا هی بتونن تصریب بزنن من تحت تاثیر نفر بعدی و متأثر من باشی میخوام ببینم که اصولا توی ویژوالا خودت این هدف هدفو داری که خب بالاخره حس بینایی خیلی سنگین تاثیر حس شنوایی درگیر میشه یعنی آدم اون چیزی که دارم میبینه اول داره اونو میبینه بعد موزیک رو میشنه ولی میخوام ببینم که آیا این درگیری رو جوری خودت ترجیح میدی یعنی سعی میکنی که یه سیر داستانی باشه و آدما درگیر اون بشن و در قالب توی مسیر حرکت کنن یا نه صرفا داره در لحظه اتفاق بصری میفته ببینم من وقتی ویژوال اگر مثلا تجربه زیاد نبوده مثلا دوبار تا حالا واسه شاین سبات زدم ویژوال یعنی امشب یکیش بود یه بار دیگه هم پارسال تو ست فست بود کلا من یک همراهی و بصری رو برای اون قائلم یعنی مثلا من سعی میکنم خودم توی ویژوالایی که همراه موزیک میزنم از این قضیه زیاد حالا استفاده سوء استفاده نکنم که خب مثلا آدمو چون مثلا اون چششون زودتر درگیر میشه چون که خب مثلا ویژوال هم مثلا خیلی حالا, حالا حداقه بگم موزیک شانی سبان اتفاق افتاد و ویژوالای من که چیز بودن خیلی در واقع, در واقع تکرار شوندن و هیل یه سری لوپه که اتفاق میفته و همون مودی که موزیک داره به تو میده تو داری توی ویژوالم میبینه واسه همینه اگه مثلا چشت تو یه جا میتونی ببندی یه جا میتونی باز کنی و مثلا بازم باشی با فضایه صرفا یه فضایه و مثلا خیلی درستش داستانی اصلا من کانسپتی هیچ وقت مثلا وقتی خودم ویژو درست کردم نخواستم بگم من با اینکه خودش مستقل از موزیکی تو استر هیچ وقت نداشته ولی یکی از ارکان اصلیه چون که کار ویژوال انجام داده و این ویژوال اصلا کلاپوریشن بوده یعنی شاید یه جایی تفکیکش سخت باشه که اون لحظه اون اتفاقی که میو فتوری با هم دیگه میشینید خیلی ساده ببین هیچ روتین خاصی وجود نداره خیر مثلا برای سیاوش خب کار ویژوالی که من کردم تقریبا یه فیلم اکسپریمنتال تور بود که ساخته شده بود حالا تحت تاثیر سری خب هم قاعدتا موزیک و هم خب مثلا یه سری کتابایی که سیاوش به معرفی کرد اون موقع و خب یه سری نقطه نظرهای جفتی مون با هم دیگه بود فقرام میشه گفت یه فیلم اکسپریمنتالی بود که من در لحظه داشتم فقط کاتش میکرد یعنی نمیشه بهش گفت ویژوال انگاری که مثلا بیشتر فیلم بود از اون طرف برای حالا نیما و حسام هم که خب این کار با حسام یک پروژه مشترکه که حالا قرار بره جلوتر و تبدیل به اتفاقات دیگه‌ای بشه سوال اینه این ویژوال یه توزیع کلی اگه برام بدی که فقط این چجوری بوده آیا مثلا یه سیر کلی رو داشت و حالا اون اولش خب اون الیدی‌های جای اضافه می‌شد بعدش که باز می‌شد دوباره یه سری فوتج می اومد دوباره می‌خوام خب اینام که این رو طی سیر منظم میچیده شده اینها پوشتم یا نه کاملا. در لحظه بود دااس این پروایز می شد نه نه نه کاملا از پیش تعیین شده بود ولی خب راستش رو بگم یه مثلا توی سه تا ترک سری Oسی که قرار بود بیاد نیومد و من مجبور شدم این پروز بکنم ولی خب آره در کلی سناری بود پشتش که مثلا, مثلا تر یک و 5 و8 که فوتش بود یه دلایلی داشت و مثلا یه تایم ریورسی بود بعد میگم چون این پروژه قراره که یه به یه دیگه ای برسه و احتمالاً یه آلبوم مشترک مثلا تصویری صوتی بیاد ازش بیرون سرزیر نیم شد سه هم سال تا هم با سه شاین سبب و مخفضانتره ترکه آخرش که به قول خودش یه هست نخته بود که برای که کل اون فضای ابسرایکت حالا بعد چه سه اصلا بیاد دیگه ام تر و شادتر بشه مخفضانتره که آخر خیلی باعث خوشحالی منه که اولین ماری که شما ازتون تور آدیو شر هست ولی تو همون سواده که تو ایمیل وارد من فرستون گفتید که من به اصلی اهل یه جوری طبیعته و اینم من یه جوری هستی کردم یعنی تو از موسیقی که تو مخفضان جایی که تکنو هم قاطیش میشه یه جوری این تکرار طبیعت هست یعنی اینو حس میکنم دقیقا یعنی یه جور بوند زیبایی شناسی تکنوام که دقیقا بر اساس تکرارهای منحصر به فرد تکراری که یه جوری مثل مثلا مثل فلسفه هراکلیتوس همون جمله معروف که شما دوبار بار تو رودخونه قدم بر نمیذارید این هر بارش ممکنه تکراری باشه شبیه اون باشه ولی هر دفعهش فرق میکنه از خود طبیعت مشخصاً بخوایم صحبت کنیم از چی الهام گرفتیم ببین این قبل از اینکه بخواد به طبیعت محیط پیرامون یا محیط زندگی ما باشه به طبیعت و ذات و سرشته خود آدمیه اونم هم اینه که یه ای طبی... که آدم میکنه در صورتی که اون تجربه تجربه خوش آیندی باشه دوست داره این طبیعت این کار رو تکرار بکنه مجددان یعنی توی بستنی خوشمزن بخوری فردا دوباره میری بستنیار بستنی رو میخری یه موقعی در برخورده با طبیعت حالا در داره به هر نحوی ممکنه که یه اتفاقی بیفته و یه تجربه‌ای رو به دست بیاری توی اون برخورد با هر معلفهی حالا یه موقع مثلا میتونه یه نمایی از جنگل باشه یه نمایی از هر چیزی یا حتی یه صدایی یا هر چیزی باشه و این تکراره به این معنیه که تو یا اون کسی که توی اون موقعیت قرار گرفته دوست داره که اون ورودی رو بیشتر از یک کسر کوچیکی از زمان داشته باشه و تکرار بکنه صرف تکرار به معنی تکرار فقط کافی نیست یعنی میتونه یه صدای ناخوشایند یا یک تجربه ناخوشایند وجود داشته باشه خب اون تکرارش معنی نداره کاری که من میکنم اینه که یعنی چیزی که بهش فکر میکنم حالا شاید موفق نشم توی کاری که داره کردم نشونش بدم ولی اصلیت و کل قضیه واسه من اینه که به یک محتوایی برسم که اون محتوا به نظر من نه اینکه بگم به یک کمالی رسیده ولی حداقل یک کلیتی رو داره که من رو راضی می‌کنه به عنوان سازنده اون فضا. در نتیجه وقتی که به اون محتوایی برسم که احساس می‌کنم یک کمالی رو داره و از نظر فرم، و از نظر محتوا این قابلیت رو داره که همینطوری توی یک خط صاف به مسیرش ادامه بده این اون جا هست باسه من که من دوستانم اون لحظه و اون آن رو واسه اینکه که ازش بیشترین حض رو ببرم و همزمان بعد از بردن حض یک دریافتی داشته باشم که حالا این دریافت میتونه باسه آدم های مختلف متفاوت باشه وارد حوزه تکرار بشن و این ورود به این حوزه نسبت به عقاید و سلایق و ایدئولوژی های مختلف میتونه تعبیر مختلفی داشته باشه ولی واسه خود من نوعی که سعی کردم اون لحظه و اون آنو به وجود بیارم مطمئنن معنی خاص خودشو داره و مثلش یک شعر میتونه تعاریف و تعابیر مختلفی پیدا بکنه ولی خب هدف من اینه که بگم این, این آن آن زیبایی واسه من و من دوست دارم که این آن توی مثل یک شوهای نور مثل یک شوهای نور توی مسیر مستقیم ادامه بره و اینقدر بره که من ازش سیر بشم ولی میخوانم که آشنایی شما با بچه هست چزاری بود؟ اتفاق بامزهی بود من توی ایران یه سیدی رو منتشر کرده بودم با انتشارات هرمز که اون موقع سیاوشت توی انتشارات ماهریز کار میکرد و نمیدونم از چه طریقی با موسیقی من اشنا شده بود و از من خواستش که در صورتی که من کاری باسه ارز داشته باشم توی انتشارات ماهریز اون متریال رو به دستش برسونم و یه جلسه ای داشتیم همنگر رو توی دفتر ماهریز دیدیم با هم یپ و گفتی زدیم و خب یه ارتباطی فراتر از کار با همنگر پیدا کردیم و با هم دوست شدیم. و دیگه آروم آروم با سلهوهای هم دیگه آشنا شدیم و بعد شروع کردیم با هم دیگه کار کردن و تعامل کردن و, و خب الان دوستای صمیمی هستیم و کما کنم یعنی با همه بچه‌ها البته ولی خب استارت آشنایی من با این تیم با سیاوش اینجوری سونا مثلا فکر کنم که الهام بخش این موزیک یعنی مثل اون چاکینگ بودی برای اره گلف گام بود بوده مثلا این میشه که یه ذره مثلا ما رو بیشتر آشنا کنیم که مثل از کجا اومده این من خیلی زود اصولا با این آدم آشنا شدم از طریق البته اون موقع واقعا اینترنت اینترنت اگر uh... مناسبی نبود تو تهران آره وضعیت وضعیت دایلاپ بود و اینا ولی خب ما از طریق اقوام و دوستانی که بیرون از ایران داشتیم و از اونجایی که خب تشنه شنیدن موسیقی بودیم تون دوره سعی میکردیم که پیگیری بکنیم قضیه فکر مال بیشتر از 20 سال پیشه و اولین برخورد من با این آقا که ولفگانگ وایت باشه این بودش که ما سیدی آلبوم پاپ رو که با پروژه علایس گسش میومد بیرون است که مال اون موقع مال لیبل میل بود تونستیم تعیه بکنیم از خود فروشگاه میل پلاتو موقع میل پلاتو هنوز بسته نشده بود و موقعی که این موزیک رسید دست ما و چند نفر بودیم که خیلی من بودیم کلا هممون منقلب شده بودیم که اصلاً این چیه یعنی یه شبیه الینی بودش که از فضا رسیده زمین مستی ما و ما همه شاخ برده بودیم کلا و خب این آدم چون که به شدت واسه من همیشه الهام برانگیز بوده و هست اصولا توی ذهنیت من و توی کارایی که من میکنم چه بخوام چه نخوام حضور ده. اون قطعه که این قطعه‌ای که شنیدی این قطعه‌ای بوده که من اصلا به یاد این آدم و به یاد لذت‌هایی که با آلبومش بردم با, با یه میل عاشقانه ای درستش کردم و هدفم هم اینه که واساش بفرستم و بشنوه و خوشش بیاد یا نیاد خدا میدونه <تصفيق>